جلسه 14 همه رسال استاد جفر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و و السلام از از عمده ترین در یه فقدی و عصبی موضوعیت و تریمیت یعنی از اهم نوام سه و این باید به صورت خیلی برجسته کتاب ها می رومد بردسی می که اهمیتش احساس می شون از براش باز میکردن با براش باز میکردن اتا برای یک کتاب می نوشته موضوعیت و طریقی و چون اینطور نبوده در لابلای کلمات ها در وضعیت مباحث مثل محمد بحث ما استطرال هم بحث میشه چیزی هم که استطرالی باشه اهمیتش محسوس نیست و چیزی که اهمیتش محسوس نباشه کسی یاد نمیگه نزو شما وقت بذارید بنا این بحث است بعد از های خیلی مهم است بعدی واسطه که اهمیت زیادی داره حالا برای این بحث ها خیلی طوله کشه اون خسته نشن صورت خیلی موجه هم تاریخیت رو هم اوزولیت رو که پر تعریف کنیم بعد قرآن تشخیص و بعد از تشخیص سامنه از ده تا مقام این روز بحث کنیم تمام بحثای تشخیص موضوع بر گرده به موضوعیت و ترینیت آیا این عنوان موضوعیت داره ترینیت داره تمام بحثای موله همین محفر و یکی از اون موارد علمه علم خودش از مقوله که اختلاف درش یا که موضوعیت داره یا داره و در که موضوعیت داره موضوعیتش وصفیه یا کشفیه بنابراین بحث یک بحث عامه علم یکی از افرادشه نه اینکه بیایم بگیم برد یا تاریخی یا موضوعیه بعد موضوعی هم دو میشه چهار تا مثال بزنیم آخرشم بگیم این در فرق برا موضوعی وصفی مثال نداریم و تمام میشه باید رو معدفیت و موضوعیت باشه بعدا بگن یکی از این موارد علم علم گاهی موضوعیت داره و گاهی داره پس این مستاقیت مسادر کلیه تونست که همه مباحث خود علم باشه علم یکی از اون مفردات. بنابراین این الان وارد میشیم به این سه مقام مقام اول تفسیرش تفسیر طریقیت و موضوعیت تو خیلی اداره شاید اینا نشنیدن با که یعنی شنیدن شاید خیلی خوب هست نشده باشه برای بعضیا تکرار نیست برای اونهاییم یعنی که تکرار هست یقینا مفیده اما نسبت به طریقیت برای اینکه ما تشخیص بریم در موارد شک در موضوعیت و طریقیت آیا شی موضوعیت یا طریقیت داره الاز باید, باید بحث برس کنیم در وارد این ستا مقوله میشه مقوله اول طریقیت طریقیت یا نیچه ستا تفسیر داره من فقط میخوام اسمشو بیارم که آقای این مراجعه تفسیر اولش تفسیر محفظ اسفانی در سلات مسافه کتابی داره سلات مسافه که با اون کتاب الاجهاری نه چاپ شده از مهمترین کتاب های فقیه در اونجا پردوده که آشفیت وجود چیزی از چیز دیگه که مباینش باشه کاشفیت وجود چیزی از وجود چیز دیگه که در ماهیت مباین باشه ولی تلازم در وجود دارن این تفسیر محقل ثانیه الکاشفیت و معرفیه و طریقیه عبارت هم وجود وجود شئین وجود شئین آخر مباین لبون موهنگیتن و وجودن که بین اما ملازمتون پیدا وجود فلازمو در وجود دار این تفسیریشون بوده اشکال برش وارده بعد تفسیریشون اشکال وارده یه فره فقی عنوان اشکال برشون اون در صلاحات مسافر خفا جدران و خفا ازم اینها قاعدن به اینکه معرف حد ترخخص هست بنابرای قول مشهور. بنابرای قول مشهور خفا ازان و خفا ازیادران معرفن هر دو برا حد ترخخص یعنی کاش از حد ترخخص هم. که ما به حد ترخخص رسیدیم یا نرسیدیم اشکالی که بهشون واردین که اینا تلازم در وجود ندارن از موارد خفا ازان هست خفا جدران نیست و به بنابراین تلازم در وجود رو نباریم بگیم منتقل میشه به تفسیر محفظه نراندهی دومی تفسیر محقق نراندهی در اواع دل در اواع دل ایام قاعده به این خبیه دو تا معرفه هم دیگه معرفیت این چیه؟ یعنی چیزی کاشف از وجود چیز دیگه باشه خفا آن کاشف از خفا جدران باشه و به کاشف از قبصوی داره حالا چیزی که ایشون گفته عینش من میگه نگه حالا اون ایجاد هزار تایراد برش باره کاشفیت اینطور معنی کرده پا شکیت و وجود شیعن عن وجود شیعن آخر مباینن له ماهیتن و وجودن بین همه ملازمتون بین وجود مثالم زده به خفا از آن خفا جده کتاب سلات و مسافه من ده سال پیش دیدم شما مراجعه کنید. الان ندارم میشین نداشتم شما مراجعه کنم سرحش ندارم تعریفیشون چرا؟ اینا معرفت اگه تلازم در وجود ندارم این هر دو معرفت تلازم در وجود ندارم شفای جدران و ازان تلازم در وجود ندارم شاید یکی باشه یکی نباشه. یادی که بلیشون وارده تفسیر دوم تفسیر نراقی در عواید الایام این عواید الایام از بهترین کتاب هاست زمان شرنی لومه باید میخوندید الان میتونید به قصد ما فضمه بخونید بباید زیادی داره این تمام فقه نراوی در این جمعه باشه یه خانساره هم خیلی از موارد که به خیلی داده از نراغی از کرد. خواده کرده در اونجا داره که کاشفیت عبارت هست از یک تلازم شرعی یا عقلی یا عادی نه تلازم در وجود چیزی کاشف از چیزی باشه لازم این تلازم در وجود داشته باشه ملازمه شرعی ملازمه اقلی یا ملازمه الفی این مثال بنویسید مثالش اینه که در وقت ملکیت شرط در وقت شرطی که ملکیت درش باشه شخص باید مالک باشه تا وقت کنه شخصی نمیتونه ملک دیگری رو وقت کنه باید مالک باشه بعد دوایاتی داریم که ید, یعنی قاعده ید در جواز وقف کافی دوایاتی داریم کسی یدی بر یک ای داره بر زمینی داره بر ملکی داره میتونن وقت بشن حالا این ید معضب به ملکیت واقعی است یا موضوعیت داره خدوم میشه با باب وقف خودش به این مسله تفسیر سوم خیلی رو اینا وقت نمیذاریم چون محل بحث نیست ما میخوام تفصیل ها تفسیر سوم ثبوم از ناینی محقق ناینه قاعده بینی که کاشفیت یا تکمینیه یا جعلیه به که مناسبت بعضی از موارد تکمینیه مثل کاشفیت دود از آتش بعضی از موارد جعلیه مثل کاشفیت نصوب این علامت های علامه راه نمایی رانم دید نصف این ها و اعتباری ها. این تفسیر کاشفی هست در سه مکتب مختلف فقیه طوری تفسیرش کردن شما بگرده شاید نظریات دیگه هم پیدا میدید یه استلاحه دیگه داریم استلاح عنوانی هست اشهی عنوان چیزی باشه معنون نباشه عنوان باشه مصطلح عنوانیت تارتن در مقابل موضوعیت تارتن در مقابل طریقیت یعنی اعلام که استفاده کردن به استعمالش کردن جایی مراد عنوانیت موضوعیت جایی مراد عنوانیت طریقیت مثلا سید از دی در قروه مراده با موضوعیت گرفته عنوانیت یعنی همون موضوعیت از از او دابته او لیحمله او یحمله مطاعه الی مکان معین به وقت معین به عجرت معین بسی اجیر شد این کار براش انجام بده و اجاره هم خیلی مشخصه وقتش، زمانش، پولش همه چیزش و این زمان واسع بوده میتونست انجام بده و انجام نده در این موارد آیا این اجاره باطل یا باطل نیست فرموده فهنفان از اگه علاوه است انوانیت و تقیید یعنی اگر موضوعیت داشته براش بنابرای شب جمعه این نماز رو بخونه اگه نخونده جاره باطن میشه بخاطر این انوانیت و تقیید داشته بنابرای این انوانیت و تقیید رو مرادف گرفته یعنی مراد از انوانیت هم موضوعیت موضوعیت داشته براش هم تیجیر کرده لم يستحق شيئا من مناب لعدم العمل عمله به مختلف اجالات اصلا نظین و مستعجر اولهزوم یا او مدجمه شببه علیهنام فسا و دو او مص عزی روز بگیره اشتباهی اومده شنبر وجود گرفته به درت مخور به از و یعنی عنوانیت یعنی تری بیگن بنابراین در کلبات این که هر کجا گفتن عنوانیت همون عنوان باش که ما داریم میگیم مواد استعمالش فرق داره کلمات استراب داره خیلی دست خرج ندادن وقتی میگن معرف یا عنوانیت اینا مراد هم کاشفیت باشه بعضی مواد به معنی موضوعیت درفتن سید یزی در اون فرق اونطوریه بعضی از موارد هم مرادبه با طریقیت مثل عنوان مکید موزون که در روایات بابره با شده فقط ذکر او انهو به نحو کشف ول انوانیت اجناس معینه کشف و عنوانیت یعنی عنوانیت همون طریقیت هم کاشکیت پس در فروات مختلف و این تعبیر استباه رو در دو تا معنای زفت هم استعمال کرد پس امر بر ما مشکل میشه که مراد این ها چی بوده این نسبت به طریقیت و انوانیت اما موضوعیت موضوعیت خاصه که از این داریم برس میکنم و یکی هم از اون معقوله ها همون علمیت های موضوعیت داره یا طریقیت داره در موادی هم موضوعیت داره آیا وسیع یا کشفی موضوعیت یعنی چیزی که حقیلتن موضوع حکم باشه سبوتن و اثبات هم در مقام اثبات موضوع حکمتون داریم میبینیم الخبر و هرم هم در مقام سبوت موضوع حکم حرمت همه خود خمره نمسکر چیزی که در مقام اثبات یعنی در دسان عدلیه و در مقام سبوت موضوع حقیلی باشه بهش میگن موضوعیت داره و هیچ ای نکرده. حالا در این بعضی از بحثا مقصده اینکه مقصد موضوعیت و طریقیت چیه؟ آیا خصوص غذایه خارجیه یا نه مطلق غذایه تقسیم میشن به اینکه موضوعیت و طریقیت رو دارن مشهور قائلا به اینکه مطلق غذایه میتونه موضوعیت داشته باشه میتونه طریقیت داشته باشه ولی مرموهای خویی و خلاف مشهور قائل به اینی که نقسم موضوعیت و تریلیت خصوص قضایی خارجی هست اینم اشتلاف اینجاست بازونم مراجعه میخواد در کتاب های اصولی اومده یعنی پیدا کردنش خیلی آسانه و سمراتی برش مترتب میشه سمراتی بر این مترتب میشه که یکی از سمراتش نمیخوام بگن تو توم میکشه در این حد خیلی مومنله ولی بنویسید تو مراجعه کنید در اعتصام آب همم اعتصام آب همم یعنی عدن انفعالش به نجاسند در اعتصام آب حمام آیا شرطی که کررم باشه یا نه شرط نیست اختلاف بین آقای خویی و مشهور در اون مسئله معلوم میشه این فروات نیاز به مراجعه داره باید وقت بذارید اینا رو الان نمیتونیم بگیم اینا بالاتر از این حد چون خیلی از مقدمات رو میخواد وزه هم زود خسته میشه حالا شاید بعدا بگیم ولی الان شما کسی حسله داشت مناقشه مراجعه کنیم مطلب بعدی یعنی مطلب دوم که امروز باید بگیم اینه که ماه و مختزر قاعده ما این همه بحث در علم تاریخی و موضوعی داریم مطلح میکنیم مختزر قاعده چیه بیاییم بگیم علم موضوعیت داره یا طریقیت داره ازا علم تا به اقامت اشترت ایام یجب و تمام به وایات هم داره این اگر این پیدا کردی که ده روز در یه جمعیمونی باید تمام میکنه حالا این یا موضوعی وصفیه یا کش کدومشه ماه و مختز القاعده در این موارد که آیا موضوعیت رو ثابت کنیم یا کشفیت رو بگیم این علم موضوعی وصفی یا موضوعی کشفیه مختضای قاعده چیه قضیه فقط به یه دلیل نگاه نکنید یعنی این کل شریعت رو با هم نگاه نکنید میتونیم بگیم که مقتضای قاعده به صورتی وقتی بودنه که دلیلی که دوش علم عقل نشده بود هم اماره میتونه یا هم علم من اما در مولا به این نصف عمرو بیان نشده اومده یه عمری بیان کرده که اماره نمیتونه جاش بیاد. یعنی اماره رو خارج کرده و علم من کرده این تو حالت اولیه اینه که علم من در مولا موجودیت داشته که به این اخت باید میترده اما این هر حد درستی نیست چما اگر که خلید شریعت رو با همی که نگاه بکنیم به نظر نه که مذاق شریعت بر اساس اینه که واقع احراز بشه نه این که حالا نفس من چه حالتی داره بزا اونجایی که مولا علم منو را میکنه در راقه به نحنی شاید چه بخواهی این عدم حسابه امارات واقع خارج بکنه تو اونجا عدم حساب نیست علم من فقط تو حالت اول هم عدم حسابه اماره هست هم جهل مرکب من اما تو حالت دوم مولا با علم من وقت بحث کرده تو موضوعش اون عدم حسابه به واقع اماره رو خارج کرده فقط جهل مرکبه من میبینیم رضاق ما میتونیم این مفترضه پارده ایده که مولاق اینجا من را افت کرده نه اون براش حالتی نقصانی منبانه باشه اون واقع براش مهمه مگه اینکه خودش حکسی بکنه که من اون حالت نقصانی یه طور را به این نتیجه میرسیم ولی از یه راه دیگه این نتیجه میرسیم و از یه راه دیگه و الا نتیجه همونه که میخواهم که نفک موضوعیه که وصفی نباشی حالا بحث اینه که در مواردی که ما شکل داریم آیا موضوعیت داره یعنی وصفیه یا کشفیه علم عقصی رو ما نمیدونی مختصای قاعده چیه مشهور قاعدم به اینجه اصل در اناوین اینه که موضوعی باشه موضوعیت داشته باشه در مثل علمم موضوعی وصفی باشه چرا دلیلشون اینه که دلیل افر محتضای تطابق بین مقام اثبات و مقام سبود اینه که موضوع که در مقام اثبات اومده همون موضوع واقعی باشه چیزی که عرض شده موضوعیت داشته باشه چیزی دیگه موضوع نباشه موضوع معفوض در لسان ادله، همون موضوع ملحوض اندشاره باشه و تحابق بین مقام اثبات و مقام سبوت مختزاش اینه که موضوعیت داشته باشه نه اینکه موضوع چیزی ای باشه این یک دلیل که شایدتر اینو داره دلیل دوم اینه که حمله بر معدفیت و طریقیت موجه الغای القای یعنی بیارم بگیم اینه که عرض شده این موضوعیت نداره چیزی دیگه موضوعیت داره این موجه به القای نناوینه الخمر و حرام خمر موضوعیت نداره مسکر موضوعیت دارم و یه که این عناوین محفوظه نه باشه پس برای چی اومده اینها ها این میشه،, میشه بر این میشه برای این مطلب که حتما از فاید موضوعیت از فاید موضوعیت باشه میشه بگیارم <متحن> حالا شهیدت اومده ادعا کرده که فتحابه بین مقام اصلاف را مقام میسود میتونه اینا را برگردن به یک چیز خیلی اصلاف برین چیزا نداره. اینا اومدن این طوره با این که مختضای از این موضوعیت باشه و طریقیت دلیل میخوند یعنی در هر عنوانی در روایات افت میشه اصل که که موضوعی باشه نکشکی و یکیش هم علمه این بحث مشهور در مقابلم باعث مخالفند مطلب مثل سه هر دو هر اثبات کنیم خودش دیگه قاعده در قاعده کنیم کنی. علم شده اذا العلم تقاقه ومت اشد ایام یجب که تمام این موضوعی وصفی یا تاریخی اول کلام دیگه ما میخوام تشخیص بدیم. ولی موضوعی هست دیگه اعط شده. موضوعی وصفی یا کشفیه. اون میخوایم کشف کنیم. قاعده اینو میگم شاید هر دوتا باشه. این هر دوتا در انسان allele بود. نگا، تا قاعده اینا دارم میگم این موضوعیت داشته باشه خصوص علم. ولو اقامه اشته ایامم نشه. چرا؟ خود علم خاطر اینکه اون واه علم موضوعیت تام بده. چی دقیق؟ نظر معلومی چیزی از علم وقی نیست چیزی غیر از خام وقی نیست همین موضوع که اصده تمام دخالت مال همینه موضوع نیست همون که از خمور معلوم چه میگه؟ معلوم با علم بخمگیتیش فرق قائل میستن یعنه علم اونا رو معلوم ناینی قائل شد که تاست ترکیب هست هست مشروع از میگن از که در اناوین موضوعیت داره علم مقصوده علم تمام الموضوع ازا علم تبخمیت شه اینه متعلق علمه ما به صورت مثال در آوردیم الخمر المعلوم ما به صورت این مثال در آوردیم و این نوایت اینه ازا علم تبخمیت شه ازا قطع تا اقامتش داریم اینه برای مثال دیگه مثال ها رو تبیید میکنه پاره این جوانه بیشتر اینا به کردیم قبلا مذبه اینی که ما مختزای قاعده رو موضوعیت بدونیم یا طریقیت کشیت بدونیم مختزای قاعده چیه؟ مشهور میگن موضوعیت ولی این مرناه مشهور مختل چرا؟ به خاطر که ما قرائنی داریم برای حمله بر موضوعیت و قرائنی داریم برای حمله بر طریقیت اون قرائن رو باید نمیتونیم همینطوری به صورت مبهم بگیم که مختزای قاعده موضوعیت هست. مختزای قاعده اینه که علم مرخوض در روایات موضوعی وصفی باشه نه اینطور نیست چرا؟ حالا یک سری قرائن داریم برای حمله بر موضوعیت یک سری قرائن داریم برای حمله بر طریقیت و معرفیت این قرائنش مهمه. این قرائن مهمه امده ترین برستن با همین قرائنه آیا این قرائن رو شما قبول می‌کنید؟ یا این قرائن رو قبول نمی کنید یعنی از حیطه علم اصول خارج میشه اصول نتونست در علم اصول گفتن موضوعیت ولی این کاربردی در فشه ما نداره چیزی که کاربرد داره همین قرائنی کلام میخوام بگم. بله همیشه, همیشه دیگه مونده به تشخیص شما قرینه قرائن حمل بر طریقی است باشه بر وقتی ما هم کنیم بر طریقی نه موضوعیت خودش موضوعیت نداشته باشه اولین قرینه و آخرین قرینه برای مشهور مناسبت حکم و مناسبات حکم و دو تا مثال قبلا هم گفتم الان یادداشت کنم در اطرافی مثلا اکل ایام هی سه روزه و خود روزه هم که یک روز از صبح تا شب باشه مناسبات حکم و موضوع و ارتکازات شرعی و همین تخصصهایی که فقها دارن مقتضی تفریق بین این دو تا مثاله در مثال اولی که سلاست ایام باشه سلاست ایام باشه مقدار معتبر نیست یعنی بیان بگیم دو ساعت زمانش مهمه ولی در سوم مقدارش مهمه یعنی یک روز حداقل اقل متعارف دوازده ساعت باشه لذا اونهایی که در قطبین زندگی میکنن که این دوازده ساعت رو نداره وجوب صوم نداره مقدارش ولی در اولی مقدار مهم نیست اقل ایام سه روز و دو که در وسط واقع میشه ولو به اندازه 200 ساعت باشه. مناسبات و موضوعه مشکور اینطور فتحانه بزراد در قیل موارد متعارف سوم موجوبش ثابت میشه یه منطقه باشه 25 ساعت یه منطقه باشه 5 ساعت اینها فرق میکنه با هم دیگه به خاطب اونو انسان قادر نیست یکی قادر بعضی از روزها شاید سه روز هم باشه بعضی هم که 25, روز باشه. 25 ساعت باشه بعضی که 6 ماهه، بعضی دو 2 ماهه. این اختلاف پیدا میکنه دو تا مثال برامون مناسبه رفت ما موضوع. قرینه توهم، عناوین طریقی میه. این بعضی از عناوین از عناوین طریقیه. اینا نمیشه بگه موضوعیت داره. مثل زهور زهور در باب خیار قبل زهور عید. این طریقیت داره. طریقیت داره این که از کی بوده از قبل از معامله بوده بنابراین معامله منفسخ میشه این از اناوین طریقیت در آیه فجر طریقیت داره رؤیت در باب شهادت طریقیت داره علم طریقیت داره بنابراین نمیتونیم بگیم علمی که عقص شده در روایات علم موضوعی صفتیه به خاطر اینکه این‌ها از عناوین طبیعی حساب میشه اصلا شاخصهشون اینه خاصیت ش...